من از تنبالی و بدیهای پیری بتو پنامی بار اله من از عذاب دوزخو عذاب قبر بتو پنامی رادیو راژیو صدای خلافت رادیو صدای سنگر نوات ایفیم شانند های رادیو سرای خلافات السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خواستیم که با بعضی از برادران که زیر سایه درخت نشستن و در فضای آزاد وقت خوش رمگزرانان می ازشان بپرسیم درباره ماه مبارک رمزان که ماه مبارک رمضان چیگونه سپری میشن و ایشان در ماه مبارک رمضان چی آمادگی ها گرفتن میریم سراغ یکی از برادرها ها به سخن بگین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و السلام بر رحمت الله و برکاته برادر گرامی اسم شما چیست؟ اسم من ابو بسیر فارسی ما شالله ابو بسیر فارسی از فارس انشاءالله هجرت کردین شما مترست؟ بله برادر ما از فارس هجرت کردیم ما برادر شما که ما بگین که در ولیت خراسان چی وزیفه انجام میدین خودتان؟ وزیفه ما این است که اینجا بچه ها را سبق میدیم سبق میخونن و دیگه خدمت میکنیم برای خلافت ماشاءالله انشاءالله که نسل آینده خلافت اسلامی ولیت خراسان یک آینده درخشان خواهد داشتند و با امید ازی که نسل آینده و مجاهد مبارز تربیه شوان و دین الله را در سرزمین و الله حاکم بسازند. چطور است ابو بثیر فارسی برادر رمزان چگونه مگذر در تحت نظام خلافت اسلامی؟ الحمدلله ثم الحمدلله ما خیلی اینجا که اومده خیلی بفرق میکنه از وقتا که ما در ایران بودی روزه مگرفتیم این خدر اینجا اصلا نه توش نمیشی نه گوش نمیشی آب هوا خیلی خوب است. الحمدلله آرامش داریم اینجا دیگه وقتها که ما اونجا روزه میگرفتی گرم بود و نمیتونستی که دیگه خدمت بکنیم اینجا هم الحمدلله روزه میذاریم خدمات میتونیم بکنیم تو میکشیم ورزیم خدمات میکنیم دیگه برای بچه ها وقت میگذاریم صبح میدیم الحمدلله آرامشی خیلی خوبی داریم یعنی باور کنی بالا قسم آرامش داریم اینجا که از طرف مرتدین فارس شما آزار عذیت هم شدین کدام وقت؟ خیلی زیاد آزار شدیم اونجا اونجا وقت متروان بودیم و کراهیم مثلا باری جا بجا میکردیم خیلی اذیت میکرد اونجا نمیشود که اونجا زندگی کنیم از <تصفح> الله خواستیم که یک نظام اسلامی اللہ تعالی بر ما بده اموتاری هم اللہ با ما فیصله کرد <سؤال> اینجا خیلی الحمدلله الان آرامش داره خیلی خوب شد اینجا برام الحمدلله در فارس برادرای اهل سنت هستن که خواستار خلافت اسلامی باشن و یا بخواین که دین الله را حاکم بسازن یا خیر هستن تا اینجا نایان در سرزمین خلافت تا زیر بیرقهاسی یا نایان نمیفهمم فکر میکنه که چی خبرت من اونجا که بری فقط همی که بری کشته میشی نه اونطوری نیست اینجا بیای هر چیزی کسی uh, که استاد باشه استاد هر چیزی باشه هر کاری شغل داشته باشه براش میده اینجا یکی اگر معلم باشه براش معلومی میده اگر استاد ورزش باشه استاد ورزش براش میده اگر راننده باشه راننده اگر تبلیغی باشه براش همینجا میگه تبلیغ کنیم دگه هر یکی بار یک دفتر دارم اینجا هر یکی به هر شغل بخایم لراشون اینجا یعنی کار به مو اهلش سپرده میشم آه هر کاری که به مو اهل خودش سپرده میشه انشالله برای چی آمادگی گرفتین خودتان در ماه مبارک رمضان که شما چی فعالیتایی رنجام بتین در این ماه خدمت کنم برای مجاهدین مبارز که به خاطر روزای الله آمده در موقع افطار براشون افطاری میبرم آب میبرم در سنگرا میرم میایم خدمت میکنم که الله تعالی راضیش از ماوازونا دیگر کاری که از دست ما بر میاد ان کار خیر راش انجام میدم ان شاء الله از عملی عطون راضی هستین الحمدلله ثم الحمدلله خیلی راضی هستم اینقدر راضی ام که باور کنی که هر موققی که یادم میاد ازش ذی شکر میکنم که الله منو قبول کنه دو میکنیم که الله ما رو ثابت قدم بگذاره ان خب برای که در ورات خراسان هستن یا در شام و عراق هستند چی پیام داری خودت؟ پیام من این است که هر برادر مجاهده در هر گوشه ای که در سرزمین خلافت است فقط از الله بخوای الله تعالی براش آسان میکنه دعا کنه پیش الله سبحان و تعالی الله تعالی دعاش قبول میکنه، دعا بر سوالت قبول میشه یکی همین که یک بلای براش سرازیر بش اون بلا رو ازش دور میکنه یکی از چشم سر میبینه اون دعا براش قبول میشه کمی دعا ما قبول شد یکی برای قیامت براش ذخیره میشه داش که یعنی برای قیامت براش ذخیره میشه اونجا الله تعالی براش آسان میکنه در قیامت برای این است که سر وقت انشالله هر یکی و مواملی که داره انجام بده اطاعت بکن از امیرای خ نماز رو سر وقت رازی باشه از الله سبحانه و تاله شکریت اللہ را بجا بیا الله را, را برای شو باز میکنه انشاءالله اگر این کافرا و امنشین کافرا بر این فخر میکند که ما بم داری چی غم داری ما درم داری چی غم داری ما توپ داری چی غم داری ما جت داری چی غم داری ما اسلحه داری چی غم داری مجاهدین مبارز مجاهدین دولت اسلامی بر این فخر میکند که ما الله داری چی غم داری الله ما را کافیه با قانون الله تعالی کسی نمیتونه سرپیچی کند هر کس که با قانون الله سبحان و تعالی سرپیچی کند الله سبحانه و تعالى را در دنیا و آخرت خارز زلیل می کند انشاالله. در دین الله کسی نمی دونه که کمی بیاره. هد. اگر در دین الله اندازه یک چوبی که کمی بیاری چوبی کوچیک اندازی با چیز دیده نشده بازار بین دیده شده در دین الله کسی کمی بیاره. الله تعالى آنها را خارز زلیل می کنه، انشاالله. جزاک الله خیره. اسوما ابو موسی زلات کابل आम्ही ارمنه داشتیم که این روزه را بریم تا نظام شرعی تیر کنیم اونجا مشکلات خیلی زیاد بود بدن روزه است چشمشام دیگه روزه کې شد کل باید روزه شه چشوم گوش بینی باید کل روزه شه اونجا تنان دان بسته می شد. چشموم خجی بود دیگه نگاه قدم اونجا بسیار مشکل بود اگر روزه ده اونجا مشکل است نظام توتی روزه تیر کردن بسیار مشکل است اسم ما معاویی از ولیت کابل است ما آرزو داشتیم که خلافت حجرت کنیم و ایمه مبارک رمزان در زیر بیرق اسلام و در تحت قانون اسلام سپری کنیم و ما الحمدلله که الله بما توفیق دات و به سرزمین خلافت رسیدم و انشالله روزی رمضان در خطوط جهات در خطوط ربات انشالله سپری خواهم کرد بر رمی المؤمنی نی دارم که او را بشارت میتم بجوانه که آنها عشق شهادت هستن، عاشق قضی هستن که باید اسلام کامیاب شوه بر هر به هر طریقی که میشه حتی با قیمت خون، با قیمت جان، با قیمت ناموس مال هرچند که باشه و انشالله خلافت قائم خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم نام من عمر خالد ما از ولایت قندوز هجرت کردیم به خلافت وقتی که مسلمان روزه میگیرد و از دیگر چیزهای فحاشی که از خودداری نمی و در حدیث هم میآید مفهومش در ذهن من است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که قول زور یعنی دروغ مراد از ای همه گناه است که کسی گناه را ترک نکند و, و, و دنش را بسته بکند الله تبارک و تعالی به روزه از او هیچ احتیاجتی ندارد اگر چی او را بسته کرده تا بگه بی لحظات خبری سوی خلافت گزارش های جانبه از فعالیت‌ها و پیشروی های دولت اسلامی در تمام جهان لحظات خبری سوی خلافت شما را از حقایق و معلومات تازه و دقیق با خبر می سازد. و از تبلیغات دروغین رسانه‌های غربی پرده بر لحظات خبری صدای خلافت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شنوندگان مسلمان و ممین رادیو صدای خلافت به بخش خبری ما خوش آمدید به امید اینکه روزهای ماه مبارک رمضان را به خوبی سپری کنید امروز سه‌شنبه 16 رمضان سال 1437 هجری قمری توجه شما را جلب می‌دارم با آخرین تحولات و های دولت اسلامی از رادیو صدای خلافت و این هم سرخطی چند خبر کشته شدن دو پسر قمنداران ها در جلال‌آباد نیروهای دولت اسلامی بر شش موقعیت نظامی سوری در جاده رقه و اسریات تسلط یافتند. حلاکت 15 عسکر عراقی در رمادی. سلید سواری. سلید سواری. حمله گسترده دولت اسلامی در شهر مینبیچ. و کشتشدانی هفته دو پنج اسکر حمله است در فلوجه صلیل الصوارم, الصوارم. اقتحام نخست خبرهای خود را از ولایت خراسان شروع می کنیم. گزارش رسیده از خراسان می گوید که یک ماینی جاسد شده در شهر جلالابات قماندان مریشه های محلی ولسواری کوت به اسم لال را آماش قرار داد. خبرهای ابتدایی می رساند که در این انفجار دو پیسر قماندان مسکور که اربکی بودن کشته و یک زخمی می باشد، از سرنوشت خود قماندان تا کنون معلومات در دست نیست. لحظات, لحظات خبری, خبری صلاح خلافت. خلافت تازه ترین رسیده از شام حاکست که نیره های دولت اسلامی تا یک حمله غافلگیرانه بر روستای ابو علاش و پنج موازی دیگر نیروهای سوری در جاده اسریا و رقعت تسلط یافتند، خبر می که در این حملت دو تانک و یک توپانداز نیز غنیمت گردیده است. در همین حال در خبری دیگر آمده است که مجاهدین دولت اسلامی بر روستای خربزایدان نیز کنترول یافتند. جاده اسریا و رقب بیش از یک افته است که شاهدی در گریهای شدید میان مجاهدین و نیروهای دشمن بوده است. خبرها از دمشق می که که یکتن از نیروهای گارد جمهوری تابی ارتش سوریه در منطقه بیقصب در شرقی ولایت دمشق به نیروهای دولت اسلامی تسلیم گردید. یک حمله کننده استشادی دولت اسلامی کاروان ارتش ایراق را در اطراف منطقه زنکوره در شمال غربی رمادی در هم کبید. خبر میگوید که در اثر این حمله استشادی پانزده تن از نیروهای ایراقی کشته و 3 ارادتان که همهر به شمول یک بلدوزر و یک ارادموتر حامل افراد به کل تخریب گردیده است. منطقه زنکوره موقعیتی در رمادی است که چند قبل به کنترول مجاهدین خلافت در آمد خبرها از یمن است که در اثر انفجار یک ماینی چسبکی در منطقه شیخ شهری عدن مدیر تحقیقات جنایی زخم برداشته است. تازه ترین گزارش ها که نیروهای دولت اسلامی حمله گستردهی را از محورهای متعدد بر موازی نیروهای کردی در شهر مینبیج واقع در شرق حلب آغاز نمودند. خبر می که مجاهدین دولت اسلامی از اصر دیروز تا کنون موفق شدند تا مناطق خربت الروس، جبل عاشره، غری کبیره، غری صغیره، نشیما و شیخ ناصر را در جنوب و غرب شهر مینبیچ تحت کنترل خود درآورند. خبر می‌افزاید که نبردها در چندین نقطه دیگر این شهر هنوز هم جریان دارد. مجاهدین دولت اسلامی همچنان 15 کیلومتر به سوی شرق شهر مذکور پیشروی کردند. این در حال است که یک حمله کننده استشادی دولت اسلامی تجمعی نیروهای کردی را در غرب شهر مذکور هدف قرار داد. خبرهای افتدایی می‌رساند که در اثر این حمله 20 کرد ملحد کشته و تعدادی هم زخم برداشتند. گزارش رسیده از زیراخ که یک حمله کننده استشادی دولت اسلامی تجمعی ارتش شراق را در دروازه ورودی کمپ تاجی در شمال بغداد آماج حمله قرار داد، در اثر این حمله موفقانه 20 عسکر عراقی کشته و زخمی شدند. خبرها از شهر رقه حاکی است که تعداد بسیاری از نیروهای نظام سوری و شیب نظامیان شیعه از مقرات و میدان سفیان در جنوب طبقه فرار کردند. در همین حال نیروهای دولت اسلامی با تعقیب آنان پرداخته و درگیری‌ها در بیرون از شهر طبقه جریان دارد. خبر می که چندین حملکاننده استشادی با استفاده از موتر بمگزاری شده نیروهای دشمن را هدف قرار دادند در طی این حملات بیش از افتاد تن از ارتش سوریه و ایش نظامیان زامیان شیعه کشته شدند در گریهات با هنوز در شهر فلوجه جریان دارد در تازه‌ترین موارد سه حمله کننده استشادی دولت اسلامی نیروهای عراقی را در داخل شهر هدف قرار داد. در سر این سه حمله استشادی بیش از افتاد پنج اسکر عراقی کشته و شش اراد هممرشان به شمار یک موتر حامل افراد به طور کل از بین رفته است. حملات استشادی و انفجاری دولت اسلامی در دسر بزرگی برای نیروهای عراقی و شبین نظامیان رافزی در فلدوجه به حساب می آید. و هر روز در اثری چینین حملات صدها تن از روافظ روانه جهنم میشوند و لله الحمد شنوندگان عزیز این بود آخرین تحولات و پیشروی های دولت اسلامی از تان جهان سپاس و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته لحظاتی خبری صلاح خلافت. منحج من من شنوانده های رادیو صدای خلافت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته امید است که رمضان خوش رست پری کنید باز هم معبومسلم با خراسانی در خدمت شماستم برنامه منهج تا منهج را با ما و استاد احرار دنبال کنید چون بحث ما پیرامون درس های فکری جریان داره از استاد بعض سؤالات درباره جنگ های فکری میکنیم که جنگ فکری چی است و چی تاریخ چی داره و در جنگ فکری کفار چی نخش را بازی میکنند استاد محترم چون در برنامه قبلی بحث در یک حد صورت گرفت و تکمیل نگردید چون وقت برنامه ما کم بود میشه که بحث گذشته یعنی اهداف جنگ فکری را به شنوانده ها بیان کنید؟ الحمد لله وحده و والسلام و, و على من لا نبی بعد فعضو بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل اقدة من لساني يفقه قولي وقال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم وقال تعالى والفتنة أشد من القتل أما بعد تشكر از انكي باس برما وقت دادت وپش از انكي باس بالاي مباحث گذشته مرور مختصر داشته باشیم و در پیوند به تکمیل مباحث گذشته یعنی اهداف جنگ فکری صحبت ها و گفتوشنود های خود بکنیم باز هم یک بار دیگر چندین عملیاتی که دیروز توسط برادران دولت اسلامی در پیکر و در عمق کابل صورت گرفت تبریکی عرض بکنیم و از الله سبحانه وتعالی استدعا میکنیم که در رمضان همان قسم که در گذشته نصرت متوجه مسلمانان شد در هیر رمزان هم برادرها بتوانند با جهد و مجاهده و توفیق الله بر پیکر از کفار همین طور عملیات های انتقام جویانه را از برادرهای که در گذشته شهید چنان و با ما نیستند در مباحث گذشته بیشتر ترکیز بالای عمومیات بود و مشخصا در مسائل خاص در رابطه با تعریف و ای سوال مطرح کردیم که چرا جنگ فکری و گفتیم که هر شیوه و هر رو راهکار و هر رو عمل یا هر رو کاری که کفار به خاطر بیدین ساختن مسلمانان در جوامع اسلامی میریزند و پیگیری می‌کنند تا مسلمانان را بیدین بسازی نمیده یک تعریف جنگ فکری در الفاظ ساده بگه و ایرام گفتیم که در مجال نظامی اینا نتانستن که با امو ابزار و زیاد و وسایل بسیار عالی در عرصه تکنولوژی یا مجهز ما را شکست بدهند پس مجبور شدند به خاطر ازی که ملت ها به ویژه ملت اسلام یا جامعه اسلامی یا معاشره اسلامی یا دین و دینداری را از جامعه اسلامی دور کنند اینا مجبور شدند به وسایل فکری متوسل شوند در اهداف جنگ فکری گفتیم که هر چیز از خود هدف داره و یا جانب خیر میباشه هدف یا جانب شرم میباشه و بیشتر چون این ابزار کفری یا ماشین جنگ های کفری توسط غربی ها به ویژه یهود و نصار ها اداره می شود بیشتر مسئولیت و یعنی حددار این جنگ های فکری کفار و در رأسش امریکایی ها هستک اهداف جنگ فکری در نخستین است که امی روحی مقاومت و مبارزه را که به اساس قرآن سنت متعلق به یهود و نصارا یعنی دشمن دیرینی مسلمان ها آمده اینمی جذبه و اینمی احساسات و اینمی فکر و اینمی رسالت جنگیره که مسلمان در ذهن خود علیه امی کفار و یهود و نصارا یا مشویکین میپروراند امی باید چی شود از بین برود یعنی در نخست یکی از اهداف امدیش همین است مسئله دوم که ما در تاریخ مثال های زنده این اه اهداف را احساس کردیم که مسلمانان در قبال دین و دینداری است. به ویژه در مکتب استشراق یعنی شرقشناسی در تاریخ روایات که متعلق به فعالیتهای مخربانی شرقشناسا کسانی که کفار هستند و در پیوان به شرق و معاشر شرقی بوجه معاشر مسلمان ها تحقیق میکنن کنند تقریبا در یک روایت تاریخی نقل است که در 150 سال با تعداد 60 هزار کتاب علیه اسلام و علیه متون قرآن و علیه متون که مربوط به تفسیر قرآن است نگاشته شده توسط کفار که هر روز یک هشاریه چند کتاب یعنی یکونیم کتاب توسط امی کفار گذاشته شده تا مسلمانان را نسبت به موتون دین و نسبت به نصوص دین و نسبت به داشتهها و آموزه های دین مشکوک بسازه وقتی که در تاریخ جنگ فکری مراجع شود در میابیم که یهود بویج یهود بنی قریزه و بنی قینوقا و بنی نذیر مقیم مدینه هم چون این اربها و ابزار را به خاطر تشکیک دیگران که شایقین و محبین اسلام بودند و میخواستند داخل اسلام شوند به کار بردن. یکی از ابزار را که به خاطر تشکیک و ایجاد شبه و شک در متن قرآن کریم یا در متن داشته های رسول سازالم یا در متن آموزه های آسمانی اینا می در یقوعیت قرآن کریم اما از کمی کلانا یا حاخام یا زعما و مقتداهای یهود در, در مدینه برای کسانی که مراجعه می کردن به اسلام به پیروان خود می که شما در نفس صبح داخل اسلام شوین و دیگر یعنی یعنی اخرها لعلهم يرجعون یعنی در آخر وقت از دین دوباره رجعت کنین و مرتد شوین و بیروشین تا در متن قرآن کریم مردم شک کنه که یک متن متزلزل است و یک رسالت متزلزل است که در یک روز نمیتونه تعادل و استقرار فکری یک مسلمان حفظ کنه و سهون مساله جلوگیری از رسیدن اسلام به غرب است که در یکی از نقصه های چاپی امریکا با نام نیویورک آمده بود که اسلام یگانه مذهب است که بسیار با سرعت در آلت رشد است و ما دیدیم یازده سپتامبر یک فاجعه بر تمام مسلمانان در ناحیه ایجاد یک فکر جدید در مقابل دشمنی در مقابل یهود و نصارا اکثر مردم که مسلمان شد در غرب بعد از امی سپتامبر بود ولی یک سیر بسیار تیز در پیوان به جلب و جذب اروپایی ها در نایه دعوت اسلام اسلام اختیار کرده. این امیده می که جلوگیری و غیر مسلمان ها به اسلام چی نکنه و چهارم مثلا قیادت های و قیادت های صادق و مخلص و راستین از بین بردن ما در نفس شرق دیدیم و رو رابر و زیم و مقتدا که خواست که علیه نابسامانیهای های جامعه مبارزه کنه و بخشی از نوابسامانی ها را جلوگیری کنه و در مقابل استعمار و استکبار و استبداد مبارزه کنه به ویژه سیاست های مخربانی یهود و نصارا و نشان نگانشان در شرق و به زندان‌ها افگنده شد و در بدلش مثل اشرف غنی مرتد و مثل پرویز بیشرف و مثل حسن مبارک و قذافی و بشار الحسد و امثالهم یعنی قیادت‌های کاذب به خاطر پیشبرد اهداف خود در برابر قیادت‌های صادق اینا چی کردند به مردم مسلمان و ملت مسلمان تقدیم کردن تا از آموزه های دین و از آموزه های شریعت اینا دور بمانند استاد قرار گفته های شما شنیدیم که این ابزار حربه یعنی جنگ فکری هم از خطرناکترین ابزار کفار معرفی کردید و شما کم اشاره به تاریخ جنگ فکری ایم که بنی قناقا و بنی نزیر و اینا بدن میشه که بعض نکات تاریخی جنگ فکری را مختصرا بر ما اشاره کنین تشکر از این که سوال متوجه ما ساخته در نفس بحث گذشته گفتیم که در پیشینه تاریخی هم در اهداف در مسئله ایجاد شک و شبهه در متون دین یهود تماس گرفت و بعض آیات هم در این مسئله نقل کردیم ولی تاریخ جنگ فکری همزمان با آغاز خلقت انسان شروع می شود وقتی که الله سبحانه وتعالی اقدام به خلقت آدم علیه السلام و جور کردن حیکل و پیکر آدم علیه اسلام کرد و آدم علیه سلام وقتی که پیکر و جسش جور شد ایره در جنت گذاشت. و همان وقت دیدیم که شیطان وقتی که ایره به انوان یک مخلوق عجیب و حیرت انگیز دید. از همان وقت نظر به اقوال بعض علماء اراده اغوا و فریب به انسان انسانه کرد. و لباعته وقت کلاس بنا در یکی از عیادت میفرماید عزوج بالله من الشیطان الرجیم و از قلنا للملائک استودو لی آدم فسجدو الا ابلیس عبا و كان من الكافرين وقت که با ملاک آمر شد یعنی یامر متوجه شیطان هم بود چونان وقت رجیم یعنی از امو دایره سلایت های خود یعنی معزول و یعنی رانده نشده بود وقتی که بر ملایک امر شد همه ملایک بخاطر از ازی که حکم متوجه شد به موجودات مکلف به آدم علیه سلام سجده تعظیمی بردن یعنی سجده کردن ولی شیطان به اساس همو تعویل بیجای یا استدلال بیجای یا استدلال فلسفی که داشت که ما بهتر از این نستم به آدم علیه سلام سجده نکرد و این سجدهش علتش استکبار و تکبر بود و به سبب می چی بود که ابا و سکبرا و کان الکافرین که از جمله کفار گشت ولی بعدا وقتی که هوا هم خلق شد و آدم علیه سلام و هوا در جنت یعنی به عنوان دو موجود مشرف و مکرم از جانب الله زندگی خود بسر می برد یعنی امو ماده کینه و حسد در نفس شیطان وجود آمد و اولین کسی که ابزار فکری را به عنوان یکی از ابزار خطرناک در برابر اس انسان استفاده کرده ای شیطان بود و معمول است یک دکاندار وقتی که متوسل به ابزار غیر شرعی در تجارت و دکانداری و بیادر مارکت و مارکتداری می شود بیشتر از هربی قسم استفاده می کند چون قسم در بین مسلمان ها از, از ویژگی خاص برخوردار است و کوشش می که کمی ابزار خود یا وسایل خوده به قسم سر مشتری تحمیل کنه و امی قسم بود که شیطان هم در یکی از آیتهای قرآن کریم الله سبحانه و تعالی میفرماید که و قاسمه هما اینی لکما لمینا ناسحین یعنی ابزار قسم به اینوان یک هربی فکری در برابر آدم علیه سلام اختیار کرد و گفت که ما نسبت به تو خیرخوا هستم و اینم دو ابزار و سه ابزار استفاده کرد و درایت دیگه مکفه ازله هم شیطان به سبب امی ابزار فکری بود که آدم علیه السلام لغزان دو یعنی یک نسخه مؤثره به خاطر اغوا و فریب آدم علیه السلام استفاده کرد تا از آن درخت ممنوعه بخورد و بعدا قصهیش بسیار تعویل و در تاریخ بیا هم دیدیم که این ابزار به عنوان یک قضیه استفاده شده ویژه در تاریخ بیا که مشرفترین و مکرمترین موجوداتی هستند که در ناهی الگوبرداری و در ناهی تقدیم انسانیت یک تابلوی زنده از جانب الله انبیا هستند که اونا به عقیده ما مسلمان هم محسوم و از طرف امین مخالفین و کسانی که مخالفت های شدید نسبت به انبیا روا می داشتن ابزار فکری استفاده شده به ویژه کلمات مثل شاعر و مجنون و صاهر و در زمان رسول الله سلام ما دید وقتی وقت که جنگ های دامنده رو تاریخی بین دو قوم مشهور یعنی حوز و خضرت وقتی که یعنی در جنگ بوآس اینا دست به شمشیر میبردن و یکی دیگر را به بسیار شکل فجیانه به قتل می و اشعار مخصوص خود در همین جنگ استفاده میکردند ولی بعدا دیدیم که به سبب اسلام بین اینها یعنی تعهد در پیوند با اخوت منققد شد از جانب رسول الله صلی الله علیه و بخش اعظم نصرتها ها از جانب همین مردم شد و در تاریخ معاصر این به شکل سیستماتیک وقت شروع شد که یکی از مقتداهای کشور فرانسه به نام لوئیس نوم که پادشاه دوم نهم فرانسه بود و در یکی از جنگها ها به اثر ضربات کوبنده از جانب مسلمانان که در نفس مصر به وجه شهر منصوره خورد اسیر شد و بیشتر از یک و نیم سال در آنجا ماند و در یکونیم سال در نفس زندان این تعمق و فکر و موجگافی و جرفنگری کرد تا به نقطه برساند که علت کامیابی مسلمانان را در میدان کارزار یعنی به ویژه جنگ های که متعلق به جسم انسان یعنی جنگ های محسوس و جنگ نظامی است بیابد و به این نقطه پی برد که مسلمانان با ابزار کم و وسایل کم همیشه در مقابل ما وقتی که استاده شدن ما را بسار به شکل جدی و شدید مورد عملات جسمانی قرار داده هم. و بعدا پی به این برد نکته برد که عامل اصلی که این جسمهای ضعیف و ابزار کمه یا حرکت های کمه در حرکت میاره و ما را ضربات کوبنده میزنه او عقاید و فکر و اندیشه و نصوص و توحیدی است که در وجود مسلمان ها حرکت ایجاد می کند همین می باشه وقتی که در برابر فیدیه از زندان آزاد میشه دوباره به کشور فرانسه مراجعه می کند بعد از او با آنها بحث مباحثه می و یارا تمام متنفذین نظامی و سیاسین و رجال فکر خواهد و برشان خطاب کن اگر شما باز هم در این فکر هستین که مسلمانان را در میدان جنگ یعنی جنگی که متعلق به جسم انسان است یعنی جنگ فیزیکی آنها را شکست میدی این محال است و جنون است و خیال اگر می که مسلمانان را در این جنگ از پا در پس شما نباید به ابزار متوصل شوید که متعلق به خسارت جسم مسلمان است، بلکه چیزی که آنها را به حرکت میاره او فکر و ذهن و امی آموزه های دین است که در وجود از یا حرکت میافد نه پس همان می باشد که ابزار فکر در تاریخ معاصر در دوازده به شکل رسمی و بشکل یعنی بسیار فنی و ماهرانه پیریزی میکنن تا مسلمانان را شکل از اشکال و به نحوی از آنها اشغال کنند تا دگه روحیه و جذبات و احساسات زده یهودی و نصرانی را مسلمانان در ذهن و فکر و هوش و زندگی خود در مقابل این کفار نپرورانه سپاسگزار استاد از معلومات هایی را که در رابطه به جنگ های فکری به شنوانده تقدیم نمودید چون در دقایق اخیر برنامه قرار داریم سپاسگزارستیم از شنونده هایی که تا پایان برنامه با ما بودن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته صدای خلافت <تصال> رادیو صدای براعت از همه کفار مرتدین و روافظ نود تهلند گرامی توجه نمایید به اوقات نماز فردا چهارشنبه